بیشنه همین حدیث فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم الندم و توبه پشیمانی توبه است پشیمانی توبه است پشیمانی پش از گناه از گناه کبیره چون گناهان تقریب کفاره میشن گناهان کبائر با نمازهای فرض پنجگانه که مکافراتم بخشیده نمیشن به خلاف قول شازی که مامان می عبدالبر میگه که بعضی ها قائل به اینن که گناهان کبائر با نمازها و با قصه حق الناس اینا بخشیده میشن با اعمال نیک و سال خیر گناهان کبیره با جز با توبه نسوح بخشیده نمیشه باید انسان توبه نصح داشته باشه آدم باید تو توبه،, توبه بکنه مثل اون شخصی کنه و دو نفر را کش و توبه نسوح کرد تا اینکه ص می نون کش نفر را کش و توبه نسوح کرد باید قابل گناه های کبیره توبه نسوح داشته باشیم باید پیش اون باشیم این برای این معنا نیست که تنها رککن توبه پیش ماری نه پیش معانی هست حقوق نسه که باید بهشون بر بگردیم با دست از اون گناه بکشیم و عزیمت داشته باشیم بر عدم رجوع به اون گنا گنا پشیمانی از اون گنا اینا همه شرط توبه مثل رسول زلی علی الحج عرفه حج عرفه است خب وقوف در مزدلفه بعضی گفت ركن بعضی سنگ جمرات زدن به شیطان زدن طواف افاضه اینا رکن جزء ارکان حساب میشه خصوصا طواف افاضه که جز ارکان حساب میشه پس این بی این دلیل نیست که فقط با تو توبه انسان پذیرفته میشه خیر بلکه پیشیمانی یکی از ارکان توبه هست از جمله ارکان توبه حق الناس که باید داده بشه مثل ما من دوتا حديث شواري حديث من دو تا حدیث اشاره میکنم کنم یکی حدیثی که قبلا گفتم اینجا هم گفت هم گفت بحث غیبت که اباکرم عمار رضی عنهما گفتن که این غلام چقدر میخوابه بعد بیدارش کردن برو رسولله صدا رس بزنن که غذا پختیم رسولله صدا رس زد گفت بیا که بیاک او بکر هامر میخوان دعوتت کردن گفت که برو بهشون بگو انک و قد تدم تو ما شما ایدامتون اون آبگووشتونو او خوردید دو دوان دوان اومدن و, و بکر ها من ناراحتونن که چرا رس اینین حرفی زده وقتی که اومد را سارسن گفتنیله ال رحم خیککو و بین اننیاب بکنم گوشت برادتون لابللادندونات رو می بینن گفت که رااب بام رو از سخار کن گفته هو فلی از سخفل لکن و اون شما رو ببخشه یعنی اون طلب سخفابراتون بکنه چون حق او پایمال شده با این غیبت غیبت حق الناس. يا حديث فمريدي الرسول صلى الله من ينفذ قال للمفلس من امتي طب من ياتي يوم القيامه بحسنات كالجبال ولو آخر حديث چندين بار ان حديث توضيحي هذا مفلس از امتي رسو ميگه امتي روزي من كسي كه مياد در روز قياميت فلاني رو كوتك زده مال فلاني خورده و بدو بيرا به فلاني گفته اين از حسناتش ميگيره اون از حسناتش ميگيره تو اين كه از حسناتش چيزي نمونه و تو خدمه سيئات فتطرح عليه ثم يكبه فنار و گناهان ديگران به جهنم حق الناس حق الناس گرفته ميشه بس از شروط حق غير حق الناس ظلمی می کسی کردیم ازش حیالی بتلبین و او را رو راضی بسازیم اینا حق ناسه همیشه زبان، تو توبه داشته باشیم زبان استغفار و زبان ب کنی داشته باشین این از باب توصیه دارت بهتون دو میگم دوستان راست اساسا میگم من نیو مجلس نمیشینم نمیشی مگر نمیشی اینکه صد بار استغفار میکنم میگم میکن رب اغفر و وتب علي انك توب الى الغفور رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از هر نماز صد بار طلب مغفرت میکردم میگفت اللهم اغفر لي وتب علي انك توب الى الغفور توصیه میکنم میکن شما میکن دوستان حتما بعد از نمازهای فرض پنج این سنت را احیا بکنید زنده بکنید حتما صد بار بگید اللهم اغفر لي وتب علي انك توب الى الغفور دعا از الله بکنیم همیشه استغفار بکنیم نیک توبه بکنیم به درگاه الهی و در مقابل تقصیراتی که داریم ولا چه در انجام واجباتمون چه در نیکی به و والدینمون و دوست و رفیق و غیر در مقابل همه اینها اگر کوتاهی هست طلب استغفار بکنیم خصوصا بیشتر کوتاهیمون در, در درگاه الهی هست در خسن در طاعت هامون که ما در نماز داریم عدم خشوعی که در نمازمون هست الله هست همه ما در بگذره و گناهانمون ببخشه و بیامرزه و ما رو با گناهانمون مؤاخذه نسازه